905 علا پاسخ داد ارزش بزر بدور بیش از اینهاست. هاست ای آنچه سلطان خواسته برای من به آسانی امکان پذیر است و تو برو شام تهیه کن همین که مادر از خانه بیرون رفت علا به کمک چراغ جادو جن را احضار کرد و خواسته سلطان را به او گفت و از او خواست انجام شود جن بود همتون اطاعت میکنم و ناپدید شد در یک دست جن بازگشت و چهر برده سیاهپوست سیاه بوست همراه او دیده شد که روی سر هر کدام از آنها تشکیب مملو از الماس و یاقود و زمرد و مروارید بود این جواهرات از جواهراتی که قبلا مادر علایدین به سلطان داده بود درشتر و زیباتر بودند بردگان سفید و سیاه به درون خانه آمدند و همه جرا فرا گرفتند آنگاه جن از علایدین پرسید آیا باز هم چیزی لازم دارید؟ علایدین جواب منفی داد و جن هم ناپدید شد وقتی مادر علایدین به خانه بازگشت از دیدن چنین صحنه‌ای حیرت کرد علایدین گفت مادر عجله کن و تا سلطان در شورا حضور دارد همه این هدایا را به قصر سلطان ببر در این موقع علایدین در خانه را گشود و بردگان سیاه و سفید به دو ستون با رخت های و کمربند های زرین از خانه خارج شدند و قجان تشت طلای خود را روی سر حمل می‌کردند. مادر علایالدین هم دنبال آخرین برده سیاه‌پاره افتاد. علایدین مطمئن بود که سلطان او را به دامادی خود خواهد پذیرفت. مردم کوچه و بازار که این صفه بردگان را با آن لباس‌های گرانبها و تشتهای طلا دیدند، همه برای تماشای ایستادند و اذهامی در شهر پدید آمد. جواهرات روی لباس بردگان به زیبا و قیمتی بود که زرگران در اول شهر ارزش آنها را میلیون ها سکه برآورد می و وقامت بلند و اندام موزون و صورت زیبای بردگان نیز همه نگاه ها را به سوی خود کشانده بودند مردم آنها را می و به اختیار دنبالشان می رفتند. جمعیت به قدر ازدهام کرد که نظم شهر به هم خورده بود همین که اولین برده سیاخوز با آن لباس جواهر نشان وارد قصر شد دربان از فراوانی جواهرات لباسش تصور که از شاه وارد شده و خم گردید تلویه لباس او را ببوسد ولی آنها گفتند ما بردگان سرور خود هستیم و سرور ما به موقع وارد خواهد شد به دنبال این برده سیاه سایر بردهها هم با های جواهر نشان وارد حیات دربار شدند و به ردیف منظم ایستادند به این منظره با شکوه و جلالی بود که افسران سلطنتی سلطان در برابر آنها جلوه‌ای نداشتند. وجود آنها شکوه درباره سلطان را بالا برده بود. وقتی سلطان اجازه ورود به داخل تالار را داد، آنها در دو صف به صورت نیم دایره در دو سمت تخت سلطان ایستادند. تشت‌های طلا رو روی زمین نهادند. بردگان سیاه و بعد هم بردگان سفید روکش تشت‌ها را برداشتند و جواهرات قیمتی و درخشنده با تلقلوی خود فضا را روشن کردند سپس بردگان با اندام های موزون خود به حالت احترام ایستادند و دست های خیش را بر سینه های خود گذاشتند مادر علایدین که خود را مقابل تخت سلطان رسانده بود زمین را بوسید و گفت پسر من علایدین این هدایا را حضور سلطان تقدیم کرده و گفته است این هدایا در برابر ارزش شاهزاده بدرالبدور بسیار بیعرضش است اما با وجود این انتظار دارد سلطان آن را بپذیرد و مورد قبول شاهزاده هم قرار گیرد و خوشحال خواهد شد اگر مطمئن شود بلین ترتیب خواسته سلطان برآورده شده است. سلطان به قضی مبهود شده بود که همه اش تحصیل می کرد و به جای پاسخ دادن به سخنان مادر علایالدین تمام حواسش متوجه ارزش و اهمیت چنین حدیه ارزنده و می بود که هیچ پادشاهی نظیر آن را تا آن وقت ندیده بود به تمام معنی سلطان زیر تاثیر شکوه و ارزش هدایای علایدین بود آنگاه رو به نخص وزیر کرد و پرسید نظرتو نسبت به این همه هدایا چیست؟ این علایدین کیست که توانست چنین حدیهی خارگلاده و بی سابقه برای ما بفرستد هیچ کدام از ما او را نمی شناسیم. آیا او را لایق شاهزاده بدرالبدور بودور دختر من می شناسی؟ وزیر با وجودی که ناراحت بود از اینکه آدم قریبهی می خواهد به جایی پسر او داماد سلطان شود معهازا نتوانست از بیان واقعی از خودداری کند و اظهار کرد ارزش هدایای علا بیش از حد انتظار و بالاتر از کافی است و تردیدی نیست که شایستگی دارد مورد لطف سلطان هم باید قرار گیرد اما اگر تمام گرنج های آلم را در یک کفیه ترازو بگذارند با ارزش شخصات خانم برابری نخواهد کرد دربار سخن نخست وزیر را تحسین کردند سلطان آنچنان مهو تماشای هدایا شده بود که اصلا در این فکر نبود که آیا علایدین دارای صفات پسندیده و شایستگی لازم برای همسری با دختر او را دارد دیدن این همه ثروت و سرعت علایدین در تهیه این هدایا برای سلطان جای تردید باقی نگذاشت که او باید مرد توانا و با لیاقتی باشد سلطان به مادر علایدین گفت م. من به پسرت بگو با آغوش باز در انتظار آمدن او هستم تا با دست های خود شاه را به او تسلیم کنم روز سلطان دست از کار روزانه کشید و به خورجه باشی دستور داد تشت ها را به قصر بزر دور هم کنند و هشتا تن بردگان خوشندام و خوش را به درون قصر هدایت کنند خود سلطان هم به قصر دخترش رفت تا با او این همه ثروت را تماشا کنند در زمد مادر علایدین هم با خوشحالی خود را به خانه رساند و مجده موافقت سلطان را به او اطلاع داد و گفت سلطان ام کرده است که هرچه زودتر به حضور او بروید تا او دخترش را به همسری تو در آورد. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. سورن جادو را کار برد و جن نمایان گردید. از او خواست تا گرانبهاترین به هاتر رقصهای آنم برگش حاضر شود، بعد هم در گرمابه مرمرین به شستشو پردازد در یک لحظه خواسته او عملی کردید. و زیباترین گرمابه ها با آب زلال و حرارت دلچست و وسایل بیمانند آماده شد و بعد از حمام گرانبهاترین به هاتنین رخت را به کمک جن بتن کرد علایدین بعد از گرمابه و پوشیدن رخت جواهرنشان نشان کاملا آدم دیگری شده بود آنگاه به جن دستور داد که بهترین از پای دنیا را با رکاب البته از جنس طلا وزین چرمی درجه یک و بهترین تجهیزات که در استبل بزرگتری شاهان جهان هم پیدانه می شود و میلیون ها سکه ارزش دارد برای او حاضر کنند زمنان 20 تن برده با های جواهر مانند همان برده هایی که برای سلطان فرستاده شده بود تا در کنار اسب علا حرکت کنند و 20 تن دیگر در دنبال او در دو صفحه ده نفری ره گردند علاوه بر این شش کنیزک زیبارو برای مادر خود دستور داد تا بالبات های گرامبه در کنار مادر حرکت کنند مانند ندیمه های ملکه و علاوه بر این ده هزار سکیه طلا در ده عدد کیسه آورده شود همین که علایدین این دستورات را به داد لحظه بعد اسب و چهل برده و ده هزار سکیه تلا در ده کیسه و شش کریزک زیبا رو که هر کدام لباسی برای مادر علایدین در بخشی بخشای زربفتی بروی سر داشتند همه به علایدین تبدیم گردی از این ده کیسه سکه طلا چهار کیسه را علایدین به مادرش داد تا های شخصی خود را انجام دهد و شش کیسه دیگر را به شش کریزک زیبا سپرد تا در طول راه آرام آرام میان مردم پخش کنند و قرار شد از شش کریزک ستن در سمت راست و سائر دیگر در سمت چپ مادر علایدین هنگام رفتن به قصر او را همراهی کنند. علایدین شش کنیزک را به مادر داد و گفت اینها بردگان شما هستند و در این ها هم های متعلق به شما را جای دادند. در این هنگام علایدین ای یکی از بردگان سیاه را به حضور سلطان فرستاد تا وقت شرفیابی را تعیین کند. برده با سرعت به قصر رفت و با تقوّی که سلطان با بی‌صبری در انتظار دیدن علایالدین است. علایالدین سوار بر اسب شد و عزیمت خود را با تشریفات لازم به سوی قصر سلطان آغاز کرد. مردم برای تماشای او بر پیش دیگر می کردند و کف میزدند خصوص که شش برده مرتبا سکه ی طلا بین مردم پخش می کردند و مردم شور و حرارتی نشان میدادند این هیجان و فریادهای تحسین‌آمیز تنها از سوی کسانی نبود که سکه ها را جمع می‌کردند بلکه سایر مردم از این سخاوتمندی و جوانمردی علایالدین که بر روی اسب جای گرفته بود و چنین مهری به مردم نشان می‌داد، به شوق و شادی برخاسته بودند کسانی که تا دیروز علایالدین را در کوچه‌ها می‌دیدند که به ولگردی مشغول است، امروز او را با این وقار و موقعیتی می‌شناختند همه این تغییرات از برکت چراغی جادو بود که بهره گیری و بهجا از چنان وسیله ای سبب پیشرفت و ترقی تدریجی دارنده آن گردیده بود مردم می‌دانستند که علاءالدین همان کسی است که روز گذشته بردگان زیبا با لباس‌های جواهر نشان و تشهای جواهر از خانه او به قصر سلطان رفته بودند ادعی که سرشته سر از اس داشتند تمام حواسشان متوجه اسب به میان باریک و گرانبهای او بود که می گفتن میلیون ها سکه ارتش دارد همه مردم می سلطان دخترش را به علایدین میدهد، ولی هیچکس کس سخنی درباره اصل نسب و خانواده علایدین به میان نمی آبرد. و هیچکس نسبت به او حسادت نمی و بر ثروت فراوال و موقعیت او رشد نمیبرد. وقتی علایدین وارد قصد شد و به حیات رسید بر حسب شیوه سلطنفی از از پیاده شد و مأمورین تشریفات با مراسم ای او را به حضور سلطان بردند سلطان که علایدین را با آن شکوه و لباس شاهانه و جواهر نشان دید و قامت و اندام برازنده او را نگریست و پوشاک ناچیز مادر او را به یاد آورد بسیار شگفت زده شد و ظاهر هر دوی آنها برای سلطان آور بود آنگاه سلطان از تخت پایین آمد و سه قدم هم به پیشواز علایدین جلوتر آمد و اجازه نداد علایدین در حضور او زانو بزند سلطان علایدین را با چهرهی گشاده در آغوش گرفت و محبت فراوان نشان داد علایدین برای دومین بار خواست به پای سلطان افتد ولی این بار هم سلطان مانع شد و علایالدین را بین خود و رخصت نشانید نشاند علایالدین بعد از نشستن گفت من خود را غلام سلطان میدانم افتخار بزرگی که نصیب من شده است بر اثر لطف سلطان است زیرا شن و مقام من کوچکتر از آن است که یارای برابری با شکوه و جلال سلطنتی داشته باشد این خواست پروردگار است که سلطان به من مه میبرزند و خداوند عقل و دقت به من عطا کرده است تا به شاهزاده خانم که ارزش او بالاتر از هر است فکر کنم و چشمانم سعادت دیدار او را پیدا کنند از شتاب خود در خواستگاری پوزش میخواهم زیرا عشق به شاخصاده صبر و بردباری را از من رو بوده است سلطان در حالی که برای دومین بار علا را در آغوش خود می فشد، گفت پسرم در علاقه من, من نسبت به خودت تردید نکن از این پس تو برای من بسیار عزیزی و از پشتیبانی من برخوردار خواهی بود هم نشینی و گفتگو با تو ارزندهتر از تمام ارزش ثروت خود و ثروت تو می باشد. در این هنگام سلطان اشارهای کرد و نوازندگان شروع به نواختن کردند آنگاه سلطان از تخت به زیر آمد و علایدین را به تالار پرشکوهی برد که جشن شاهانهای در آنجا برپا بود سلطان و علایدین با یکدیگر همسفته شدند و بزرگان مملکت و امیران به ترتیب مقامشان در جای خود ایستاده بودند و صحبت می کردند. سلطان چش از علایدین برنمیگرفت و شفیقه حالات و گفتار او بود. پس از پایان شام، عاقد و رئیس بالاترین دادگاهها را به حضور سلطان آوردند و او هم ازدواج شرعی را جاری کرد و علایالدین و بدرالبدور را به همسری همیشگی یکدیگر درآورد. همه بزرگان و اعیان مملکت از کمالات و هوشیاری علایالدین در حیرت بودند و او را شایسته دامادی سلطان میدانستند پس از پایین مراسم عقد، سلطان به علایدین پیشنهاد کرد شما میتوانید در همین قصر شب را بگذرانید و مراسم زناشویی خود را انجام دهید و در همین قلش هم زندگی کنید. علایدین تشکر کرد و گفت اگر اجازه فرمایید اول در نزدیکی قصر سلطان قصری در شنش شاهزاده منا کنم بعد مراسم را انجام دهم ده چون دوست دارم نزدیک سلطان باشم و بتوانم هر روز حضورتان عرض احترام نمایم. سلطان گفت هر کجا دلت بخواهد بیتوانی زندگی کنی و خوشحال می نزدیک یک گیر باشین علایدین اجازه گرفت و مرخص شد و با همان تشریفات مراجعت کرد و به محض ورود به خانه جن را احسار کرد و به او گفت میخواهم قصر بشکوهی در مجاورت قصر سلطان بسازم که شایسته ی دختر پادشاه باشد و این قصر باید از سنگهای سماق یشب سبز عقیق لاجه وردی و سنگ مرمر زیبا ساخته شود در بالای تالار این قرش گنبدی باید بنا گردد که از هر چهار طرف دیوارهای آن به جای آجر از خشت طلا و نق به طور یک درمیان ساخته شود هر طرف آن دارای شش پنجره باشد که در نهایت ظرافت معماری ساخته شود و به بجای شیشه همه آنها از الماس و یاغود و زمرد باشد و به نحوی بنا شود که در تمام جهان مانند نداشته باشد ورودی و اندرونی قصر بسیار بزرگ و از حیث زیبایی منحصر به خودش باشد. باغ زیبا و بزرگی آن قصر را احاطه کند که از حیث گل و درخت و آبنم و بی‌نظیر باشد و خزانهای هم لبیز است که های طلا و نقره تا زیر سقف پیش بینی شود. اتاق‌ها و تالارها و دفاتر کار به تعداد کافی برای 400 فصل در آن پیش شود و های مجهز و تمیز برای تهیه انواع ها و استبلها با اسبهای بیمانند و مهتران ورزیده و همچنین اساسیه و لوازم زندگی و های متعدد و کلیه نیازهای زندگی در آن موجود باشد اندارهای کافی برای اساسیه و لوازم زندگی به میزان اضافی همچنین بردههای مرد و زن برای پذیرای شاهزاده بدر البدور آماده خدمت و موجود باشند روز بعد قبل از طلوع آفتاب همه خواسته های علایدین شده بود و جن او را دعوت کرد تا از قصر جدید بازدید کند. وقتی علایدین به قصر جدید رفت نمیتوانست باور کند که آنچه را میبیند از آنچه که درخواست کرده بود به مراتب آدیتر و زیباتر است. در این قصر رویایی نگهبانان افسران و خدمتکاران، با لباس های ها و مخصوص نظر بیننده را جلب میکردند. لباس خدمتکاران و افسران و بردگان بطه و که انجام می‌دادند، انتخاب شده بود. در این لحظه در برابر علایدین ظاهر شد و او را به خزانه برد. در خزانه گونی‌های بزرگ پول به اندازه ها و ارزش‌های های گناگون تا سقف روی هم انباشته بودند و خزانه دار را که مرد امینی بود به علایدین معرفی کرد. بعد استحبه را نشان داد که بهترین از پای دنیا با بهترین مهترها را در آن جای ایجاد بود و های بسیار زیبا بر تن آنها بود. از آنجا به انبارهای آذوقه‌ای که انواع خوراکی‌ها، و زیورآلات و تجهیزات اسب‌های سواری در آنجا گرد آمده بود، رفتند. علایالدین تمام تالارها و های قصر را از پایین تا بالا بازدید کرد، مخصوصاً تالار اصلی را که دارای 24 پنجره بزرگ بود. و کف تالار از مرگوب ترین فرش های پوشیده بود. علایدین بسیار خوشنود شد. زیرا آنچه را میدید از حد انتظار او بالاتر بود. فقط فراموش کرده بود که مسافت بین قصر سلطان تا قصر خودش را با مخمل قرمز بپوشانند. وقتی جن این موضوع را شنید در یک چشم هم زدن این مسافت از مخمل قرمز پوشاند. وقتی دربان ها برای گشودن در قصر از دیدن فرش مخمر بین دو قصد سلطان و علایدین در حیرت فرو رفتند و این خبر به گوش سلطان و امیران وزرا رسید و همه برای تماشای آن در قصد جمع شدند. هنگامی که نخست وزیر این صحنه جالب را دید به سلطان گفت چنین کاری فقط با جادوگری امکان پذیر است که در یک چشم به هم زدن بتوان این مسافت را با مخمل پوشاند. سلطان گفت جادوگری یعنی چه؟ علایدین ثروت بی ای دارد و با ثروت بسیار هر کاری امکان پذیر است. وقتی علایدین از وقت جدید خود به خانه بازگشت به مادرش گفت رخت های تازهی خود را بپوش و به اتفاق برده ها و ندینه قد به قصد سلطان برو و بگو که قصد دارد همراه شاهزاده خانم امشب به قصد تازهی علایدین برود. مادر علایدین که بردههایش او را همراهی می کردند، به سوی قصر سلطان را شد علایالدین هم بر اسب خود سوار شد و خانه پدری خود را برای همیشه ترک کرد و به قصر جدید رفت که در آنجا با شاهزاده بدور زندگی کند و چراغ جادوی خود را نیز همراه خود به قصر جدید برد نگهبانان قصر ورود مادر علایالدین را به آگاهی سلطان رساندند سلطان هم دستور داد نوازندگان به نوازندگی مشغول شوند و طنها به صدا درآیند و سرصدای شادی و جشد در همه شهر برپا گردد تمام شهر را چراغانی کردند و دکانداران دکانهای خود را آیین بستند و با فرشهای زیبا آراستند و همه جا روشنایی و نوای موسیقی بود همه مردم در خیابانها و خانه های خود به پایکوبی و شادمانی پرداختند و در فاصله بین قصر سلطان و قصر این جمع شده بودند تا قصر جدیدی را که علائدین در یک چشب هم زدن بنا کرده بود تماشا کنند همه اهالی از زیبایی شکوه آن شگفت زده شده بودند مادر علائدین با تشریفات و احترامات سلطنتی در قصر سلطان استقبال شد و خاجهباشی او را به عمارت شاهزاده خانم راهنمایی کرد شهزاد خانم به پیشواز آمد و مادر علائدین را در بالای تالار جای داد و های او مشغول آرایش شاهزاده خانم شدند علا هم وارد شد و بعد از او سلطان هم به دیدن شاهصاد خانم آمد. مادر علا که بانوی سالخورده ای بود نقاب خود را از چهره بر می داشت. ولی هنوز آثار زیبایی دوری جوانی در سیمای او دیده می شد. سلطان که چند بار مادر علا را در لباس و ظاهر فقیرانه دیده بود ایلا که مانند شاهصاد خانم ها لباس پوشیده بود سلطان را به تحسین و تعجب واداشت و نتیجه گرفت که جوان دقیق و منظمی است. بعد لحظه رفتن رفتر شهستات خانم فرارسید و با سلطان و ملکه خدا حافظی کرد و در حالی که مادر علا در سمت چپ او بود یکصد ندیمه و کنیزکان زیبا با لبات های بسیار گرانبها او را برزقی می کردند و دسته های نوازندگان به نواکسن مشغول بودند و به دنبال آنها یکصد خاجه و یکصد نگهبان در داردیف به سوی قصر علایدین در حرکت بودند خطفاران جوان با مشعلهای روشن در هر طرف آنها را همراهی می کردند که روشنای مشعلهای آنها با روشنای قصر علایدین در هم می و همه جا را چون روز روشن کرده بودند بدین دین ترتیب خانم روی مخمل قرمز قدم گذاشت و به سوی قصر روانه گشت گروه نوازندگان قصر علا هم بر نوای موسیقی نوازندگان قصر سلطان افزوده شد و نقمه موسیقی و ترانه گوناگون شدی بسیاری برای جمعیت در درون دو قصر و مردم تماشاچی فراهم آورده بود. علا به پیشواز شخصاد خانم آمد و خوشحالی خود را از این جشن فرخونده به او ابراز کرد و دست او را بوسید و گفت زیبایی شما سبب شد که من گستاخانه درخواست ازدواج کنم. برور بودور هم پاسخ داد، هر چه پدرم بگوید من اطاعت میکنم وقتی همگی وارد تالار پذیرایی قصد شدند، از تزئینات و زیورالاد و هزاران شمعه روشن در قندیل ها شدند شام توسط جنتهیه شده بود تمام بشقاب و ظرفها از طلای ناب بود و بهترین خوراکی ها و نوشابه و عالی شرابها شراب ها به حد وفور موجود بود قفسهها ها و اشراف های بسیار مجلل کار استادان هنرمند در هر گوشه دیده میشد که از گرانبهاترین اشیاء کمیاب انباشته بود ثروت و زیبایی به حدی بود که شاهزاده خانم با حیرت می گفت قصد پدرم با همه اساس و اشیاء زیباییش با زیبایی و ثروت اینجا قابل قیاس نیست دسته این نوازندگان مخصوص با آواز بانوان خاننده در تمام مدتی که میهمانان مشغول شام شامخوردن بودند بدون وقف مشغول انجام وظیفه بودند شاهزاده خانوم نمیدانست که این بانوان خاننده و نوازنده پریهایی بودند که جن چراغ جادو آماده کرده بود پس از پایان گرفتن شام عروسی گروه ها روی صحنه آمدند و رقصهای محلی و انواع رقصها را ارائه دادند و هنر نمایی های بسیار کردند هنگام نیمه شب علایدین دست بدرول بدور را در دست گرفت و به رقصیدن پرداختند و طبق شیوه کشور چین رقصیدن عروس و داماد نشانه پایان جشن است آنگاه علایدین شاهزاده خانم را به خوابگاه مخصوص راهنمایی کرد و ندیمه ها لباس شهستاد خانم را در آوردند و همراهان علایدین هم لباس های او را از تنش در آوردند و هر دو برای انجام مراسم زناشویی همبستر شدند صبح روز بعد خدمتكاران مخصوص لباس تازه و بسیار هایی برای علایدین آوردند که از های روز پیش باشکوهتر بود آنگاه علایدین سوار بر اسب شد و به قصر سلطان رفت و صدها برده و نگهبان او را همراهی می‌کردند. سلطان با احترامات زیاد او را در آغوش گرفت و در روی تخت نشانید انگاه علایدین سلطان را دعوت کرد که برای صرف صبحانه به اتفاق ملکه و نخست وزیر و سایر وزیران به قصر او بیایند سلطان هم پیاده با همان افراد به قصر علایدین راهی شد وقتی سلطان وارد تالار 24 پنجره گردید و آن همه جواهرات را دید که همه پنجره ها از درون و بیرون آراسته بودند قلب در شگفتی شد بعد سلطان به نخست وزیر گفت هرگز فکر نمیکردم روزی چنین با شکوهی در همسایگی قصر خود ببینم تمام دیوارها با خشت طلا و نقر بنا و چنین قصری در دنیا وجود ندارد نخستوزیر پاسخ داد تا دو روز پیش که سلطان موافقت با دامادی علایدین فرمودند چنین قصری وجود نداشت اما علایدین در یک شب آن را به وجود آورده است و این یکی از عجایب روزگار است که قصری با این عظمت که همه اش از جواهر است با این سرعت بنا گردند. سلطان پنجره های جواهر نشان را شماره کرد و متوجه شد که بیست و سه عدد آن کامل و آماده است فقط یک پنجره ناتمام مانده است. سلطان علت نیمه تمام ماندن آن پنجره را از علایدین پرسید. پیش آن که علایدین سخنی بگوید نخوص پاسخ داد حتما وقت کافی برای تکمیل آن نداشته است. سلطان گفت تصور می کنم استادان کار برای سر فراموشی یا قفلت آن را نیمه تمام گذاشتند. علایدین پاسخ داد من آن را ناتمام گذاشتم تا سلطان آن را به اتمام رسانند و این نشانه باشد که تمام کننده ی کار این پنجره ها و قصر سلطان بوده است. سلطان گفت اگر نیتی در کار بوده من با شوق تمام این کار را خواهم کرد و سلطان دنبال هنرمندان در دشته ی سازی و طلاکاری فرستاد تا پنجره ناتمام را به پایان درسانند شاهزاده خانم به تالار وارد شد آنگاه دو سفرهٔ بزرگ جداگانه گستراندند در سر یک صفره سلطان و نخست وزیر و علاعده و بدر بودور نشستند و در سر سفره دیگر وزیران و مقامات مهم دربار مشغول خوردن صبحانه شدند بدر بودور در نخستین روز پس از شب عروسی بسیار خوشنود و خوشحال بود. وقتی سلطان از سری صبحانه برخواست، هنرمندان جواهرسازی و تلاکاری به حضور آمدند و سلطان دستورات لازم برای اتمام پنجره را به آنها داد و آنها مشغول به کار شدند. ولی آنچه جواهر به کار بردند، باز هم نیاز به جواهر بیشتر داشتند. سلطان همه جواهراتی را که علایدین به او هدیه کرده بود، در اختیار معماران قرار داد. اما باز هم برای تکمیل پنجره کفایت نکرد سلطان دیگر چاره‌ای برای این کار به نظرش نمی‌رسید. رسید علایدین که میدانست انجام و تکمیل پنجره خارج از قدرت سلطان و معماران اوست به معماران دستور داد آنچه جواهر به کار بوده اید آنها را از محل خود بیرون آورید تا علایدین خودش آن پنجره را تکمیل کند آنها هم در ظرف چند ساعت جواهرات سلطان را که مدت 6 هسته در کار گذاشته بودند بیرون آوردند و به قصد سلطان برگرداندند وقتی علایدین تنها شد به سراغ چراق جادو رفت و آن را مالش داد و جن شد علایدین گفت میخوام این پنجره نیمه تمام مانند 23 پنجره دیگر کامل و جواهر نشان باشد جن پاسخ داد اطاعت می شود و ناپدید شد و در ظرف یک چش به هم زدن پنجره کامل گردید علایدین دید که این پنجره هم مانند سایر پنجره ها شده است جواهرکاران سلطان جواهرات جواهراتا به او برگرداندند و گفتند چون ما نتوانستیم به ذرافت و استادی به کار رفته در بقیه 23 پنجره پنجره ناتمام را درست کنیم علایدین دستور داد جواهرات شما را برگردانیم تا خودش آن را تکمیل کند سلطان به نزد علایدین رفت و علت تصمیم او را در این مورد جویا شد علایدین پاسخ داد چون شما به قدر کافی از آن جواهرات نداشتید بنابراین باید خودم این کار را میکردم حالا بفرمایید ببینید به نظر شما پنجره چگونه تكمیل شده است سلطان نزدیک پنجره رفت و زیبایی و هماهنگی آن با بیست و سه دیگر بسیار خوشنود شد و گفت شما در یک لحظه سختترین کارها را انجام می دهید. و من کسی مانند شما را ندیده ام آنگاه علا را در آغوش گرفت و بوسی وقتی ساسان به قصر خود مراجعه کرد نخست وزیر را در انتظار دید سلطان چگفتی و تحصیل خود را از پنجری که به خوبی و استادی کامل اتمام یافته بود برای نخست وزیر بیان کرد نخست وزیر متقیق بود که کارهایی که علا انجام می‌دهد، حتماً حتما از روی جادوگری است وگرنه کسی نمیتواند با این سرعت کارهای به این بزرگی انجام دهد سلطان گفت علایدین مرد توانا و دانایی است و از